زیارتی که برای اصحاب شهدا هست خدا قسمت کنه مشرف شدید کربلا حواستون باشه پایین پای امام حسین علیه السلام اونجایی که زریشش گوشه میشه که قبر متحر علی اکبر علیه السلامه زریه که تموم میشه یه فضای بازی دیگه که این فضای باز رو دیوار اون بالا اسامیه شهدای کربلا که اصحاب حضرته هست بزرگان اون قسمت پانه میذارن رد نمیشن یعنی وقتی توا زریح رو دور میزنن به این پایین پا میرسن دوباره برمیگردن از اون بر. چرا؟ میگن اینجا همه محل دفن اصحاب حضرت همه شهدا اینجا دفنن الا حبیب ابن مظاهر که اون جلو میدونید و هرم که بردن در یه فاصله دیگری یا میان از اون رواق پشتی دور میزنن میان اون قسمت بالا سر میگن اینجا پا روی این قسمتی که قبر این بزرگوارانه نمیگذاریم زیارت میخونید به این نوشته ها طرف قبور متحر السلام علیکم یا انصار دین الله و اوداه داعه این اودا ود رو دقت بکنید مقام اینها رو میخواد برسونه مقام ود مودت، اون عالی ترین شکل محبت و دلدادگی است قل لا اسلکم علیه اجرا الا المودتا فی القربا خدای بر به درجات مرحوم علامه امینی بی افضایات که میفرمایند چرا نفرمود الا محبتا الا الله از ال اجرا الا م محبت و مبدت رو مرادف می گیرن ولی قرآن خیلی دقیقه شما میفرماد نه به زبان عرب مراجعه کنید دقت کنید مبدت امیقتر از محبته به این معنی. محبت به اون شکل صحیح و عالی خودش که رسید دوستی با خود محبوبه دوستی با دوستان محبوب دشمنی با دشمنان محبوبه این میشه مبدت. یعنی هم تولی داره هم تبری باید همه رو با هم دیگه داشته باشه السلام علیکم یا انصار دین الله و عبد داعم.